گر من گناه روی زمین کردستم، عفت و امید است که گیرد دستم، گفتی که به روز عجد دستت گیرم، آجستر از این مخواه ککنون هستم. گر من زمه مقانم هستم، هستم، بر کافر و گبر بود پرستم هستم، هر تایفهی به من گمانی دارند، من زان خودم چونم که هستم هستم. خوشیار نبودم دمی تا هستم، امشب شب قدرست و من امشب مستم، لب بر لب جام و سینه بر سینه خم، تا روز به گردن سراحی دستم. من ظاهر نیستی یا هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم، با این همه از دانش خود شرمم باد دیر مرتبهی ورای مستی دانم.